زن آرام و نرم انگار که از پی یک پیاده روی چل ساله پیوسته روی تخت سنگی نشست مرد کند و آرام کنار او نشست چنان که انگار بلوری است که اگر قدری قدرکی با فشار به چیزی بخورد خورد خواهد شد زن مهربان اما کمی تلخ گفت گیل مرد اسایت را از زیر دست و پای مردم کنار بکش و کوهن سالیت را از باب تفاخر ندان مرد کند و آرام اما با فخری شگفتانگیز و قدری خنده آور جواب داد بانوی آزری من این مردم هستند که باید پایشان را کنار بکشند من چهل و سه سال است که به کوه می با تو و پیوسته عاشق تو این حقی بزرگ و منحصر برای من ایجاد کرده است آنقدر که اجازه دارم کوه را با خودم به خانه ببرم دوام دوام بانوی من عظمت و افتخار در استمرار است و دوام عاشق شدن مسئله نیست عاشق ماندن مسئله ماست بقای عشق نه بروز عشق هر نوع جوانی هم گرفتار حیجانات عاشقانه می شود، اما آیا آشغ هم می ماند؟ عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است، نشدت ظهورش. چهل و چهار سال در لحظه آشغان زیستن، بدون توسل به خاطرات، بدون نشستن بر سر کتاب کهنه و پار پار یادها، و بدون اینکه آنی در عظمت عشق شک کرده باشم از من پیکره مفرقی گولاسایی ساخته است که در هیچ اثرگاهی جای نمیگیرد پنجاه سال جوان و عاشق ماندن از من چیزی ساخته است که حق است آبران با احترام از کنارم بگذرند و فروتنانه به من سلام کنند نگاه کن بعد از این همه سال من هنوز بسیار جوانتر از آنم که عاشق نباشم. و بچه تر از آن که اسبا بازی نخواهم. دلم لک زده برای یک ماشین کوکی خوب. واقعا خوب که با یک سراندن تا آن سر دنیا برود تا برفترین برف برف، بالا ترین بالا آسمان ترین آسمان دلم نیم رو با سیب زمینی سرخ کرده داغ میخواهد. سید کمی بنشینیم دوتا تخم مرغ نیم رو برایت بد است آقا هم تخم مرغ هم سیب زمینی سرخ کرده و هم نمک که یک خروار می روی سیب زمینی ها بانو دیگر خوب و بد را رها کن مگر چقدر می خواهیم زنده بمانیم که حالا دیگر در این سن و سال نگران خوب و بد خوراکی ها باشیم کمی با نمک زندگی کردن بهتر از مختصری طولانی ترزیستن است آقا این حرف را کسانی میتوانند بزنند که فقط برای خودشان زندگی میکنند. تو به قول خودت پرچم افتخار همه عاشقان جهانی، این پرچم را به خاطر کمی نمک و دو تا تخم مرغ نیم رو که نمی شود برخاک انداخت. آه بانو، آن مرد پسر ما نیست که دارد بالا می آید؟ چرا اوست؟ با یک زن جوان؟ دختر جوان؟ عجب، زیباست؟ صد بار او را دیده ای منتها با عینک. ا همان است که صد بار دیدم پس لطفا دوتا بستنی بخر ببینم چتر با خودت آورده ای؟ خول شده ای مرد آسمان صاف صاف است درست است می بینم اما یادم میآید که نویسنده ای گفته است عشق یک چتر بارانی است برای دو نفر زمانی که حتی یک قطره باران هم نمیبارد پیرمرد این جمله از خود توست من کاملا به خاطر دارم این جمله را به مناسبت نمیدانم چندمین سال ازدواجمان با خط نستعلیق بسیار زیبا نوشتی قاب کردی و به من هدیه دادی سالهای سال به دیوار اتاق مهمان خانه بود بعد یکی از بچه ها آن را با خودش برد عجب عجب عیب ندارد باز هم می نویسم. نگاه کن بستنی را اینطور لیس باید زد لیس اینطور. طور خجالت آور است واقعا مردی با موهای سپید لیس زدن بستنی چه ربطی به رنگ مو دارد بانو آخر خیلی ها ما را میشناسند. خب، خب بشناسند وقتی شناختند چه کار می کنند؟ بله؟ با تعجب به هم دیگر میگویند اینها چطور میتوانند توانند بستنی هایشان را لیس بزنند؟ در حالی که ما آنها را میشناسیم و موی مرد هم سپید است بله؟ اصلا شناخته شدن و موی سپید چه ربطی به لیست زدن بستنی یا خوردن یک کاسه عدسی با گل پر دارد بله من مطمئن هستم که حتی هیئت دولت هم می تواند اگر دوست داشته باشد بستنی را لیس بزند فوقش این است که یک ملت بزرگ خوشحال می شود و می خندد. تو مثل همیشه می توانی یک کتاب درباره لیست زدن بستنی بنویسی بس کن دیگر. یک کتاب با استفاده از آن منطق جدلیت این قسمتش را نگفتی. نگفتم برای آنکه تکرار نکرده باشم. نخیر دیگر به یاد نمیآوری بانوی آذری من. تکرار کردن فرزند فراموشی است. همانطور که تکرار نکردن چقدر خوب است که ما هرگز خاطراتمان را زنده نمی‌کنیم با خاطر زیستن بریدن از حال است غنی کردن حال اما تو در جایی گفته ای انسان بدون خاطره انسان نیست فکر می‌کنم یکی از قهرمانهای من این حرف را زده باشد بعد هم نگفته داشتن خاطره چیزی سوای زنده کردن آن است. خاطره زنده شده میدان عمل را تنگ می کند. یک کاس عدسی با گلپر هم می چسبت. چه بوی گلپری هم پیچیده. عجب بهاری کرده امسال. چقدر گل. چقدر گل. خوب شد بار دیگر به لالون آمدیم. بله، حالا با سعی کن که اتر هر گل را جدای از اطره گلهای دیگر استشمام کنی همانطور که وقتی یک گروه بزرگ نوازنده با سازهای مختلف می نوازد می کوشی که صدای هر ساز را بل استقلال بشنوی صدای سازها را تا تجزیه نکنی، ترکیب درستی به دست نمی آید. تا تک تک سازها را نشنوی، از درامیختن آنها نمی توانی صدای دلنشینی بشنوی به همین دلیل است که خیلی ها نمی توانند با موسیقی گروهی کنار بیایند تربیت کردن قدرت بویایی مثل تربیت کردن قدرت شنوایی است خیلی مشکل است البته اصل. اما کاملا شدنیست. است اینجا گروه نوازندگانی که خیلی به ما نزدیک هستند آهنگ اتراگینی را نوازند. بشنو ببوی اینکه که پیش پای توست، تکنواز گروه گلپرهای وحشی است. کمی بالاتر، آنجا که گذرگاهی یک پارچه سنگی است، تکنوازی را یک بوت گل نسترن بر عهده دارد. و باز بالاتر به جایی می رسیم که میلیون ها پونه وحشی هماهنگ مزراب می زنند. که آهنگشان را نمیشناسی، متعلق به هایی است که آشق بدیه نوازی هستند اصل در عشق جایی عظیم برای بداه نوازی هست به شرط آنکه نواختن را بدانی